افسانه ملک جمشید، نوشته محمد علی نقیب الممالک، ارائه شده از کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افسانهای ای سوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی، گوینده ناهید شاقه سلام بر همراهان همیشگی کانال هزار افسان. امروز قسمت دوم داستان جذاب ملک جمشید رو براتون روایت میکنیم پس اگر از این سبک داستانها لذت میبرید تا انتهای داستان همراه ما باشید در قسمت قبل تا اونجایی گفتیم که رستم خان و ملک جمشید قول داد که اون دختر زیبارویی رو که او در ابتدای برود به شهر تصویرش رو بر روی پردهای در دروازه شهر دیده بود رو به اون نشون بده و ملک جمشید با خوشحالی اون شب رو خوابید و تا صبح دختر رو خیلی زیباتر از اون تصویر میدید. و اکنون ادامه ماجرا ملک جمشید صبح از خواب بیدار شد و به حمام رفت لباس زیبا و تمیزی به تنش کرد و کمربند جواهر نشان و شمشیر الماس نگارش رو هم بر کمرش بست خودش را معطر کرد و آماده شد در این هنگام رستم خان هم رسید و محو جمال ملک جمشید شد و ملک جمشید گفت ای پدر آیا بر سر حرفی که دیشب زدی ایستاده ای یا خیر رستم خان گفت ای فرزند مردان اگه سرشون هم بره حرف و قولشون بر نمیگرده به جان عزیز خودت قسم که امروز یار تو رو در بازار بدون هجاب و نقاب نشونت میدم فقط به این شرط که خودت رو نگه داری و ما رو رسوا نکنی شاهزاده قبول کرد و رستمخان هم دست اونو گرفت و از امارات بیرون اومدند و سوار اسب شدند و به سمت بازار حرکت کردند وقتی به وسط بازار رسیدن ملک جمشید دید که انگار بازار امروز یه مدل دیگه است مرتب و تمیزتره مغازه های جواهر فروشی رو دید که جواهرهای هفت رنگ رو توی سینی‌های طلا چیدند و تخت رستم خان رو هم در وسط بازار آزین بستند و کلا اوضاع و احوال با رزای دیگه یکم متفاوته و شورحال ای بر بازار حاکمه. رستم خان و ملک جمشید بر بالای تخت نشستن و همه اهالی بازار هم محر جمال ملک جمشید شده بودن. دل ملک جمشید ما هم آب شده بود و همچنان منتظر بود که ناگهان صدای جارشی بلند شد که ای مردم شهر با ادب باشید که اینک شمسه خوبان ملکه ی آفاق میرسه. ملک جمشید دید که همه با ادب و احترام ایستادن و چشم به ورودی بازار دوختن. بعد از اون هم چشم شاهزاده ما بر جمال بیمانند صاحب تصویری افتاد که در جلوی تاق دروازه دیده بود ولی این بار با چهره ای که هفت قلم آرایش داشت و موهای آراسته که مثل خرمن بر روی شانه هاش ریخته بود لباس بسیار زیبا و گرانبهایی هم به داشت. بدون هیچ نقاب و هجابی. ملک شمشید قصه ما با دیدن اون دختر رنگش پرید آه سردی کشید و به خان تکیه داد و مثل بیهوشان شد از اون طرف هم اون دختر زیبارو به سمت اونا اومد و از از پیاده شد و رو به رستمخان کرد و گفت ای پهلوان زمان الامان الامان که دارم حلاک میشم دیگه طاقت ندارم تو هم انگار به فکر ما نیستی ها آیا هنوز صاحب غیرتی رو در این ولایت پیدا نکردی که ما رو از این قصه نجات بده و چاره دردمون رو پیدا کنه؟ رستم خان عرض کرد ای ملک یه آفاق به حق نون و نمکی که از پادشاه خوردم که من یه ساعتم آروم و قرار ندارم و پیوسته در جستجو هستم ولی هنوز کسی رو پیدا نکردم امیدوارم که از اقبال پادشاه به زودی پیدا کنم کسی رو که این گره کور رو باز کنه و عالمی رو آسوده کنه و شما رو هم راحت کنه رستم خان و اون دختر در حال حفظ زدن بودند که ناگهان چشمای دختر زیبا رو به ملک جمشید افتاد و محو جمال زیبا و اصالت شاهزاده شد و نگاه ملک جمشید بر دل دختر نشست و نزدیک بود که از هوش بره اما خودشو نگه داشت خان متوجه شد و به شاهزاده گفت ای فرزند متوجه باش شاهزاده خودش رو جمع و جور کرد و زیر چشمی به دختر نگاه می کرد و دید که اونم داره بهش نگاه میکنه پس به فکر دلبری افتاد و با قرور ایستاد و به او نگاه کرد که دیگه دختر تاب نیاورد و دید اگه دقیقه دیگه اونجا بمونه رسوا میشه. پس روبه رستم خان کرد و گفت پهلون این جوون که پهلویتو ایستاده کیه؟ از کجا اومده من تا حالا اونو ندیدم؟ رستم خان هم گفت که یه آفاق به سلامت باشه جوان قریبیه که تازه وارد این شهر شده و چون کسی رو نداشته من به جای فرزند اونو نگه داشتم و پرستاریش میکنم تا انشالله تربیت بشه و خدمتهای بزرگی به دولت شما بکنه چون که جوان بسیار توانمندیه دختر گفت این خوان البته این جوان رو نظر هیچ جا بره و متوجهش باش و تربیتش کن که به نظرم جوان قابلیه. بعد هم دختر فوراً سوار اسب خودش شد و مثل تیر شهاب از اونجا دور شد. اما دل و دین و ایمانش رو پیش ملک جمشید گذاشت و بیهوش و حواس به قصر خودش برگشت دستور داد مجلس بزمی آراستند تا سرش گرم بشه اما بیفایده بود از همون لحظه دوچار عشقی آتشین در دلش شده بود که خواب و خوراک و ازش گرفته بود و آرزو میکرد دوباره هر چه زودتر روز جمعه بشه و باز اون به بازار بره و اون جوان رعنا رو ببینه و چند کلامی باهاش صحبت کنه. از اون طرف ملک جمشید هم یه وقت به خودش اومد و نگاه کرد و دید همه هستند و یار پیدا نیست آه از نهادش بر اومد و دستم انداخت و دامن رستم خان رو گرفت و گفت ای پدر دستم به دامنت به فریادم برست که من حلاج میشم رستم خان که اینطور دید برخاست و دست ملک جمشید و گرفت سوار اسباشون شدند و به امارت برگشتند و بعد هم مجلس بزمی میاراستم تا شاهزاده سرش گرم بشه قدر رستم خان هم به امارات خودش رفت اما شاهزاده ما همچنون دل به دل داده بود و یه لحظه هم آروم و قرار نداشت رستم خان بار دیگه اومد و دستش رو گرفت و گفت ای فرزند چرا خودت رو اینقدر ازیت میکنی یکم آروم باش شاهزاده گفت پدر من مدتی گرفتار بیابون بودم در به در بودم حالا هم باز به درد عشق مبتلا شدم که فکر میکنم دیگه این درد منو میکشه. آخه به من بگو این دختر زیبا رو کیه؟ چرا بدون نقاب و هجاب تو کوچه ها و بازار بین مردم میچرخه؟ درد و قصه ای که ازش میگفت چیه؟ و مرد صاحب غیرت رو برای چی میخواد؟ رستم خان گفت ای فرزند اون دختر پادشاه این شهره و نام او ماه گیره. سه ساله که مشکل بزرگی پیدا شده و پادشاه عهد کرده که هر کسی اون مشکل رو حل کنه این دختر رو به او خواهد داد و اون هر روز جمعه که میشه خودش رو آراسته میکنه و بر اسب سوار میشه و توی بازار میچرخه تا مردم اون رو ببینند و متمایل به اون بشن شاید که یه نفر پیدا بشه و درد اون رو چاره کنه و از این قصه نجاتش بده ولی تا به حال هر کسی که داوطلب شده نتونست کاری از پیش ببره و مشکل رو حل کنه شاهزاده گفت ای پدر عزیزم بگو بدونم چه مشکلی در کار اون پیش اومده و چه دردی داره شد که من بتونم کاری از پیش ببرم؟ رستم خان گفت ای فرزند مشکل و درد و اون گفتنی نیست و نمیتونم بگم مگر اون که بهت نشون بدم تا با چشم خودت ببینی که آیا میتونی راهی پیدا کنین یا نه؟ به شرط اینکه اکنون آرام باشی و دیگه گریه و زاری نکنی تا امشب نیمه شب منو تو رو به جایی ببرم و اون رو بهت نشون بدم و حکایت رو به تو حالی کنم شاهزاده که این صحبت رو شنید خوشحال شد و عشقه چشش چشمشو پاک کرد و دست رستم خان رو بوسید. از جا بلند شد و داخل قصر رفت و به استراحت پرداخت تا اینکه نیمه شب شد و رستم خان با لباس رزم جنگی پیش شاهزاده اومد. و یک دست لباس رزم سنگین هم برای شاهزاده آورده بود و گفت که اینها رو بردار و بپوش تا برین شاهزاده گفت اینا چیه؟ رستم خان گفت اینا سلاح رزمه شاهزاده دست دراز کرد و کلاه خود رو برداشت و گفت ای پدر این سرپوش رو برای چی آوردی؟ ساعد بند رو برداشت و گفت این نافدون آهنی برای چیه؟ همچنین هر قطعی رو که بر می داشت اسمی روش می گذاشت. تا اینکه که خان به صدا در اومد و گفت ای فرزند معطل نکن اگه می تونی این صلاح ها رو بپوش اگه هم نی بگو تا من بهت یاد بدم که وقت تنگه شاهزاده غیرتی شد و همه را پوشید و به سلاح زرهمانندی مثل خود رستم خان مجهز شد و بعد هم هر دو دست در دست هم از امارت خارج شدند و به پشت دروازه شهر رسیدند رستم خان کمان انداخت و از دیوار بالا رفت به دنبال اون شاهزاده هم رفت و هر دو به اون طرف دروازه و برج و باروی شهر رسیدند و به دنبال هم به سمت بیابان حرکت کردند. نیم فرسخی که رفتن چشم شخزاده به کوه بزرگی افتاد و کم, کم به اون نزدیک شدند و از اون بالا رفتند و به قله کوه رسیدند. اون بالا رستمخان بر بالای سنگ بزرگی رفت و رو به شاهزاده کرد و گفت ای فرزند رو به روت رو نگاه کن و ببین که چه میبینید. شاهزاده نگاه کرد و اون طرف کوه و دشتی دید سبز و خرم مثل بهشت برین که درختان سرد سیری و گرم سیری ارعر و سنوبر و شمشاد بید و نارون و سر و کاج سر به فلک کشیده بودن. و در طرف دیگه باق دلگشایی دید مثل باغ ارم که بوی اطر و گل در سر تا سر اون پیچیده بود. میان اون باغ هم گنبدیدید دید از بلور خیلی بلند به اندازه دو چراغ چراغ و مشعل هم اطراف اون گنبد روشن بود. شاهزاده خیلی تعجب کرد و از رستم خان پرسید این باغ مال کیه و این گنبد بلور چه چیزیه رستم خان گفت ای فرزند بدون و آگاه باش که باغ تلسمی است که حضرت سلیمان نبی ساخته و این گنبد بلور حمامی از جنس بلور و دولت ده پادشاه در میانش تلسم شده و هر کس که به میان این تل اسم بره بر نمیگرده پادشاه شهر ما ملک نومان پسر پسری داشت بیست ساله به نام ملک فریدون. در نهایت زیبایی و دلیری بود. به حدی که در تمام هندوسان مثل و مانند نداشت. اون سه سال قبل با غلامهاش به شکار رفت و و بر پشتش پالانی دید از مروارید و شاخش هم از طلا بود ملک فریدون به دنبال اون آهو و عصب میره و آهو هم در میان همین تلیس میره و ملک فریدون هم از غرور و جوانی و جهالت از عصب پیاده میشه و وارد این تلس میشه و از اون زمان تا کنون دیگه برنگشته. و اما در همون زمان تا سه روز به انتظارش میمونن و چون اون بیرون نمیاد چند نفرشون دوباره به داخل تلس میرن اما اونا هم بر نمیگردن بقیه یه هم پیش شاه برمیگردند و داستان رو تعریف میکنن. پادشاه خیلی نگران میشه و خودش به همراه تعداد زیادی از سپاهیان اومدند و دور تلسم رو گرفتند چند نفرشون داخل رفتن ولی بازم اونام برنگشتند تا اینکه پادشاه گفت هر کس ملک فریدون رو از این تلسم نجات بده دخترم ماه عالمگیر رو به اون میدم و بعد هم حدود چهارصد نفر از امیران و سرهنگان و سران سپاه به شوغ دختر به تلسم رفتند ولی بازم بر نگشتند. پادشاه ناامید شد و به شهر برگشت و بعد از گریه زیاد دامان وزیر را گرفت و گفت ای وزیر درد من رو چاره کن که در فراغ فرزندم از بین میرم. وزیر چند روزی مهلت خواست و با امیران مشورت کرد و عاقیبت گفت که صلاح پادشاه در اینه که حکم کنه نقاشان چند تصویر از ماه عالمگیر بکشند و در جلوی تاغ هر دروازهٔ این شهر یکی از اونا رو آویزون کنند تا اینکه هر فرد غریبهای که وارد این شهر میشه تصویر رو ببینه و خواهان اون بشه و چند تصویر دیگر رو هم به جماعت تاجران بدن تا به شهرهای دیگه ببرن. شاید کسی پیدا شد و به خاطر اون اومد و بعد هم قرارداد می‌کنیم که که هرکس این تلسم رو شکست و ملک فریدون رو نجات دختر مال اون میشه. به این ترتیب مردم سر تا سر جهان خبردار میشن و میان و بین اونها بالاخره یه نفر پیدا میشه که تلسم رو بشکنه و ملک فریدون رو نجات بده غیر از این راهی نیست که احدی از جان خودش نمیگذره مگه اینکه عاشق شده باشه که میره یا کشته میشه یا ملک فریدون رو نجات میده و به بصل میرسه هیچ راه چاره دیگه ای هم نیست پادشاه از این تدویر وزیر خوشحال شد و فرمان داد که نقاشان در امارت خلوتی رفتند و ماه عالمگیر هم خودش رو آرایش کرد و با لباس زیبا و گرانبها ها نشست و نقاشان هم هر کدوم به نوعی تصویر اونو کشیدن و در جلوی تاق دروازه شهر آویزون کردند و بعضی رو هم به دست تاجرا دادند که به ولایت های دیگه ببرند چندی نگزش که آوازه زیبایی این دختر در همه ولایت های هندوستان پیچید و از همه جا خواستگارانی از پادشاهان و امیران و بزرگان با جواهر و سپاهیان به خواستگاریش اومدند. اما پادشاه گفت که شیربه دختر من، جواهر و دولت نیست هر کس در این باغ و حمام بلور رفت و پسر من ملک فریدون رو نجات داد و آورد دختر من ماله اونه خاستگارا همگی داد طلب شدن ولی هر کی رفت دیگه برنگشت و چون این خبر در همه جا پخش شد که هر که به باغ و حمام بودور میره و بر نمیگرده و کشته میشه دیگه کسی به خواستگاریش نیومد و بعد از مدت پادشاه وزیران و امیران رو خواست و گفت یا پسرم و نجات بدید یا همه شما رو میکشم و لباس درویشی میپوشم و سر به بیابان میذارم و میرم تا بمیرم این بار هم وزیر و امیران مهلت خواستند و بعد از چند روز وزیر اومد و گفت من هرچی فکر کردم پیش از یک راه پیدا نکردم پادشاه پرسید اون کدوم راهه؟ وزیر گفت راه اینه که حکم کنید ملکه ی آفاق ماه عالمگیر هفته یک روز خودش رو حسابی آراسته کنه و لباس زیبا و گرانبهایی بپوشه و سوار اسب زیبایی بشه و بین بازار این شهر بگرده تا همه اونو ببیند و عاشق زیبایی اون بشند شاید از جونشون بگذرند و در باغ و هممام بلور برن و شاهزاد فریدون رو نجات بدن. پادشاه هم قبول کرد و الان هم مدت یه ساله که این دختر روز جمعه که میشه لباس گرانبه هایی میپوشه و خودش رو آرایش میکنه و سوار اسب میشه و دور کوچه و بازار گردش میکنه. و هر کس از جان خود میگذره و داوطلب میشه و به باغ بلور میره دیگه بر نمیگرده. و تابه نزدیک به سه هزار نفر جوون زیبا از شاهزاده ها و بزرگا و امیران به این باغ رفتن و بر چون تلسم به نام یه نفر بسته میشه و باید این دختر اونقدر خودش رو به مردم نشون بده و مردم به باغ برن و بر تا شکننده تلسم بالاخره پیدا بشه. چون ملک جمشید این حرفها رو شنید آتیش به جونش افتاد و گفت ای پدر غیرتتون کجا رفته شما چطوری راضی میشین دختر پادشاهتون بدون نقاب در کوچه و بازار بچرخه و اهل هر شهر و دیاری اونو تماشا کنه رستم خان گفت ای جمون من گناهی ندارم هرچه از دستم برومد کوتاهی نکردم حالا هم برخیز و بریم تا یه چیزی رو بهد نشون بدم که بدونی تقصیر از من نیست شاهزاده بلند شد و از قله کوه پایین اومدن در کمر کوه یه روشنایی آشکار شد جلو رفتند و نگاه کردند. قاری بود که بر دهنه اون آتش زیادی افروخته بودند و چند قلام سیاه هم دور آتش نشسته بودند و چند قلیان و قهوه جوش هم دورشون بود. رستم خان دست ملک جمشید رو گرفت و در پشت سنگی برد و گفت فرزندم خوب تماشا کن. شاهزاده داخل قار رو نگاه کرد و دید چراهای زیادی روشنه و بیست تا پوست شیر هم در طرف راست افتاده و بیست پوست شیر هم در طرف چپ. و یک پوست ببر بزرگ هم در صدر قاره بالای هر کدوم از اون پوستا یک یه پهلوان دلیر غرق در زر و سپر و شمشیر نشسته شاهزاده گفت: ای پدر این قار چی و این پاههونا کیان و اینجا چی کار میکنند؟ رستم خان گفه ای فرزند اینها امیران و پادشاهان هستند که داوطلب شده بودند تا به باغ و حمام بلور برند و ملک فریدون رو نجات بدند. هر کدوم داخل باغ شدند چند قدم به در حمام صداهای مهیبی شنیدند و بیهوش شدند. منم داوطلب شدم و رفتم و ده قدم مونده بود که به در حمام برسم صداهای هولناکی شنیدم و چیزای عجیب و غریبی دیدم و بیهوش شدم فقط قهرمان سپه سالار که خیلی هم شجاعه تونست تا در حمام بره و اونجا بیهوش شد پادشاه فرمان داده که ما چل نفر شبا بیاییم در اینجا و با همدیگه مشورت کنیم. شاید راهی پیدا کنیم و ملک فردون رو نجات بدیم. حالا مدتیه که شبها توی این کار جمع میشیم و صبح هم برمیگردیم و هنوزم که هیچ راهی پیدا نکردیم. شاهزاده گفت ای پدر اون پوست ببر که در صدر قار افتاده جای کیه و جای تو در کجاست؟ رستم خان گفت اون پوست ببر جای قهرمان سپه سالاره که سرکرده ماست و تا در حمام رفته جای من هم در طرف راست پوست بیستمه و هنوزم سرکرده ما نیومده بهترینه که تو به شهر برگردی تا من بیام یا پشت همین سنگ پنهان باش که کسی تو رو نبینه تا من برم میان غار و سرکرده ما که اومد یه ساعتی میمونم و بعد میام و به شهر برمیگردیم شاهزاده گفت من پشت همین سنگ میمونم تو برو و زود برگرد رستم خان بلند شد و داخل قار رفت و شب به خیر بلندی گفت و در جای خودش نشست. اما شاهزاده که پهلوونا اونا رو دید که غرق سلاح هستند و بالای پوست ها نشستن و دارن با هم صحبت می کنند یه لحظه به خودش اومد و با خودش گفت ای ملک جمشید تو از کدوم اینا کمتری که باید پشت سنگ پنهان باشی و اینا میان غار بالای پوست نشسته باشند؟ از چی می ترسی؟ تا در این ولایت کار بزرگی نکنی که شهرت پیدا نمی کنی و به مراد خودت نمیرسی. بنابراین از جاش بلند شد و مثل مردای دلیل و قوی داخل قار شد و فریاد زد ای هنگان و دلیران شب به خیر و بعد هم سرش رو پایین انداخت و رفت در صدر قار بالای پوست ببر نشست و شمشیرش رو هم کنارش گذاشت سرهنگا که اینطوری دیدن عصبانی شدند و به همدیگه اشاره کردن این جوون کیه به چه جرأتی رفت به جای قهرمان سپه سالار نشست؟ رستم خانم هرچی به شاهزاده اشارت کرد که شاید از جاش بلند بشه و بیرون بیاد شاهزاده به اون نگاه نکرد که متوجه بشه. در همین اسنا هم سر و کله قهرمان سپه سالار از در قار پیدا شد و گفت شب به خیر سرهنگانم پاسخ دادن شب و روز پهلوان جهان به خیر باشه چشم قهرمان به شاهزاده افتاد و جوونی رو دید چون ماه تابان و غرق در زر و سپر که جای اون نشسته عصبانی شد و روبه بقیه کرد و گفت ای جماعت این جوون کی از کجا اومده؟ سرهنگان گفتن ما اونو نمیشناسیم همین الان داخل قار شد و به جای شما نشست قهرمان احصابانی تر گفت ای جوان بیعقل تو چه کسی هستی و از کجا اومدی و بر جای مردان بزرگ نشستی؟ مگه نشنیدی که بزرگان گفتن تکیه بر جای بزرگان نتوان زده به گذاب. مگر اسباب به بزرگی همه آماده کنی بلند شما از اینجا خارج رو که حیفه به دست من کشته بشی. ملک جمشید که این حرفان رو شنید رو به اون کرد و گفت ای بی ادب تو ادعای بزرگی و مردونگی می در حالی که اصلا ادب رو رایت نمی کنی. برو اول ادب رو یاد بگیر بعد بیا و ادعای بزرگی و پهلوانی کن تمام جهان در برابر چشم قهرمان تیره شد و گفت ای نا نجیب تو که برای ساقیگری مجلس مردان خوب هستی منو بی ادب خطاب میکنی، الان مادرتو به ازات می نشونم. بعد هم شمشیر خودش رو کشی تا بر سر شاهزاده بزنه. اما شاهزاده بدون هیچ ترسی از جای خودش تکون نخورد. رستم خانه بیچاره یقین کرد که شاهزاده کشته خواهد شد خواست که بلند بشه و دست قهرمان رو بگیره و التماس اف و بخشش کنه که قهرمان قدم جلو گذاشت و شمشیرش رو بالا برد و بر فرق شاهزاده فرود آورد. اما شاهزاده به چالاکی در هوا دست قهرمان رو گرفت و گفت ای بی ادب باید تو رو ادب کنم و بعد هم دستش رو اونقدر فشرد که شمشیر از دستش در رفت و به سمتی بر روی زمین افتاد بعد هم شاهزاده چنان سیلی محکمی به صورت قهرمان زد که رد چهار انگشتش بر روی صورت اون باقی موند میان سرهنگان قلقل قل افتاد و شاهزاده هم به سمت در قار رفت و از اونجا بیرون اومد. رستمخان هم ترسیده و نگران به دنبال اون بیرون رفت و دست اونو گرفت و به شهر برگشتند. اما قهرمان بعد از مدتی به خودش اومد و پرسیده ای پهله این جوون رو کدوم یکیتون آورده بودید و اهل کجا بود؟ سرهنگان گفتن ما اون رو نمی گویا که همراه رستم خان اومده بود. قهرمان آشفته و عصبانی گفت: فرداد جمار از روزگار رستم خان در خواهم آورد و بعد هم همگی برخواستند و به شهر برگشتند. قسمت دوم این حکایت هم به پایان رسید تا قسمت بعدی بدرود. سفر به دنیای پر رمز و راز ها